جلسه پنجه و و چهارم و پنجم و در زمن افسار اسمت رایی شبههی که در رابطه با حسیت علم تفسیدی متوفرده در این مجموعی در اون خروع متوفرده مطمئه از سالز انیون به تبیید در مذکوره به ما لم یخزه لر علم تفسیدی به المخالفه اگر منجر به علم تفسیدی نشه اگر این به به مخالفت راسته بشه، اون کنو ممنوعه و من من است زم از مخالفت از معلومت تفسیل که مسئله اختلاف امت حالا قوله و اگر مستزم قابل شدن به یک فرقی که مستزم مخالفت معلومه تفسیلی باشه ممنوعه مسله مسئله اختلاف بر برگونه که اگر پاید شدن ما به یکی از این یا مراجعه به اصل مجبه علم تفسیلی مخالفت باشه یا مستلزم مخالفت معلومه تفسیلی باشه ممنوع و ایلوانه نداره. این یکی از موارد و انگل تزم به حمل اخذ المبیری مسئلت این التحالف علاکه اونهی تقاس شرعی هم ام اما من از زمن یعنی در اون به شرعی قهری باشید ولو قبلن این ملک یک نفر بوده الان بعد از حکم غذایی ملکی دو نفر میشید او یو تزم الان فساخ به تحالف من اصلی او منین تحالف علا خلاف انتیزاله بین به که بعضی ها قاعدا به اینکه از اینکه تحالف انفساب صورت میگیره بعضی ها از زمان عبور معامله و اون نصف درهمی که به دیگری میرسه و ما ظاهرش رو میگیم قیل هفت بشه حساب میشه اگر قاعد بشیم بگه مصالحه قهریه داریم اینها ششت راه هر بود که مسالحه اینا کرد و به هیچ کدام از اینها انتظام فرقی نداره فهم. نه دیگه در این ساله هر مسئله با آگه را حلبی این تا شیشتا و علایی که به تعمل این شیشتا رو قبول نداره و میگه این فروعات و نظاهرش قابل دهل نیست لذا این فتاها یا به بعضی از فقها نسبت میده یا به جماعتی از فقها ها به جزو مشکول نیستن یونها قایلا به این فروع سمانیه. و علایه که به تعمل فی دفعه اشکال اشکال چی؟ اشکال اینه که علم تفسیری متولد از علم اجمالی و دار یا نداره بعضی ها قاعد شدن به این در این هشتا مسئله ظاهرش نیکنه و نداره میگه این اشکال رو چطور دفعه کنیم یعنی اشکال بر بچیت علم تفسیری متولد از علم اجمالی چطوری دفعه کنیم میگه در دفع اشکال باید تعمل کرد همه کل مورده به احد امور مذکورت سته و سایل مواردم همینطور فا این اعتبار علم تفسیلی این اشکالشو باید دفع کنیم یعنی اینطور نیست که ما بیایم توجیهش کنیم بیاییم بگیم این هشتا پر میشه انتظام بهش پیدا کرد ابدا شدن این نیست. لذا شبهه رو باید حلش کنیم به خاطر علم تفصیلی به احتام واقعیه خودتییت داره خودتییت هم عقلیه و ذاتیه قابلیت تفسیص نداره چه در یک مورد چه در هزار مورد حال این هشت تا بوده شما ما هشت هزار فران بیاری باز همین ما علم تفسیلی رو نمیتونیم قاعده به عدم و باشه. باشیم چه میخواد متولد از علمش مالی باشه چی میخواد خودش مستقل باشه فرمه نداره فا این نه اعتبار علم به حکم واقعی و همچنین حرمت مخالفت داره این ها من مالا یک بلا تخصیص و تخصیص و تجویز به اجماع نو غیره اصلا راه نداره این از حکام عقلیه ساخت میشه ما در هیچ موردی نمیتونیم نفت بکنیم حجیت علم تفسیریم لباسین بخواد علم تفسیلی مستقل باشه که علم تفسیلی متولد از علم اجمالی باشه اذا عرفت هارزا فرنه او حکم مخالفت علم اجمالی بحثی که الان مخالفت علم اجمالیه که از بحثای نوعا از یک جهت کلامی حساب میشه از یک جهت به حساب میشه که معروف به بحث مخالفت اتضامیه مخالفت بر دو قسمه که قبلن هم آمین یا مخالفت عملیه است با تکالیف یا مخالفت اتضامیه مخالفت حکم معلوم به نجمال دو باشه قابل تصویره اما اینکه در وسایدم همین دو صورت رو داره یکی مخالفت اتضامیه و یکی مخالفت عملیه خب در مخالفت عملیه کسی اشکالی نداره بحثی نداره تمام بحث در مخالفت اتضامیه است قبل از اینکه این, این دوتا رو بررسی کنیم صور مخالفت نسبت به احکام شرعیه چهار قسم چهار قسم مخالفت ما داریم نسبت به احکام شن که دو قسمش رو مزنف در این ها داره مطمئن قسم اول از اون چهار قسم مخالفت عملیه نسبت به احکام شرعیه یه فرعیه یه منجب یعنی ما تکالیفی شده چه تعبودی باشه و چه توسلی فکر کسی مخالفت عملیه بکنه این مخالفت قرد داده متیقنش در مرمت همین اسم نه حرامه مخالفت عملیه با فروات شرعیه که میخواد تعبودی باشه مثل نماز نخوندن و چه دفن مید ترک دفن مید و امثالین هم فرقی نداره مخالفت عملیه نسبت به حکام فریدی شرعیه منجزه چه تعبودی و چه تمثلی اسم دوم، و سه و چهارم اینا دیگه مخالفت های نیست مخالفت های اتضامی که سه بسمه قسم دوم مخالفت اتضامیه با احکام اعتقادیگه حسودیگه مثل عدم اعتقاد به مبدع عدم اعتقاد به معاد و امثال این کسی معتمد نباشه به این ها اعتقاد پیدا نکنه بنابرای اینکه شخص باید اظهار کنه یا اظهار نکنه حالا بین صاحب قیاز و مشکور که بعد از بروغ انسان باید اینا رو اظهار کنه شهادت این باید بگه نگه و امثال این از فروات دیگه که مسائل اعتقادیه یه اصولیه مقاربت اتضافیه که منتظم به معاد نیست به مردم نیست این هم یقینا یعنی هم به این برمه نیاز به بحث داره بحثای اعتبادی قوی و در حد خیلی خیلی بالا که الان اصلا مدره ما نوع اعتبادات اون تبلیدیه و از در نظر علمی خطبه اول نخیر بلاور که میتونه درکش کنه داخل اون فیل یعنی در توحید ما هنوز توهید داریم توحید ما هنوز تصویرش نکردیم خار من الاشیاء اشیا به کل بشه و سایر تعبیرانی در خود به اول نصف ملاب اومده این ما هنوز توحید برای ما تصورم نشده نتونستیم یا بعض احادثی در رسول کافی اومده که مرمون ملاصد را اومده شرحش کرده چه شرح زیمایی برش داره ولی خب بعضی از اهل جمود میگم شرح خوبی نیست یعنی منان توی اعتقادات چیزی نداریم چیزی بدت میسیم با اینکه به جای استثابت هم از که سالها تو درس خارج و صد و ها وقت بیزرن براش بهت وقت بزن یاد ها رو بکنن. چرا اعتقادات مردم سسته اعتقادات ما سسته ما اصلا توحیدمون توحید ناب نیست حتی کلو کنده با توحید ما توحید نیست ما مدعی توحیدیم ولی کسی اعتقاد لازق اون ایمانی که مقداد داشته سلمان داشته ماها نداریم یا ایمانی که اسف برخیا داشته، ایمانی که امیرالمومنین داشته ما ها نداریم. اصلاً نداریم. طلبه‌ها مثلا درس رو رها میکنن میگه چرا درس نمی‌بینید؟ ای این زندگی خرج می‌ندید. یعنی کف این کف و این فرق داره. خلاص یه طلبه شغل به پیداکون باشه. معنا داره. ما یا این توحوزه دنبال شغل بگردیم خیلی خنده داره خدا میدونه یعنی یک عالم بالایی باشه که میبینی دارن میخندن به می این طلبه ها دنبال شغلن مساجد تهران خالیه آقای تو ادارات دارن مشغولن خواهی حقوق بگیرن حقوق های نکبت که نگیرن چی میشه آلا ماهی شیستر تومن چی؟ یه ملیون چی؟ در ده ملیون مساجد خالیه من چهارشنبه صبح ساعت خود پنج سیدم تهران رفتم یه مسجدی دیدم که خیلی داره جمعیت میرید روحانه خیلی قدر اینجا هست بعد دیدم این مکلا و بدرف. من داشتم حضور میگرفتم خادمی گفتم که خب اینجا روحانه نداره من میرم بالا نماز اونجا میخونم دیگه اینجا باشم میگن شما بخون یا نمیگن دوتاشم هم بدی چون شاید مردم نگن یعنی شما بیامونه خدای من به مکله خدا نمی بعد رفتم بالا اومدن جمعیت عظیم بعدش هم نشسته مکلا تفسیر میگه ترجمه خدا میدونه بلند نمود بعدش هم چایی صبحانه چرا تهران باید مساجدش خالی باشه به خاطر اینکه آقایی میدن سر کار و اینجا میدونه دست خارج هر مسجدی روحانی باید داشته باشه ما توحید ما توحید نیست مدعی هستیم دنبال شغل میگرده میاد طلبه میرسه به حوزه دنبال شغل با اولش میرفت چوپانی دیگه حوزه دیگه شغل نداریم ما معنا نداره واقعا خیلی موضحکه برای پول انسان تغییر مسیر بده و فردا هر حد ما تأثیر بکنه فردا میمون مردم دنبال مادیات نباشید مردم مادیات ارزش نداره برا برای شما نه واقعیت اینه توی دهنی محضر من می میدیدم آخون منبر میره تو توی بویوتاتینا میاد بیرون پاکت رو میگیره میره بیچاره ها شما که در اینجا داشت ممبر میری آقا دا قرارداد داد بنویسی بعدش برو بگیر پیش مردم پول گرفتن چه نکبتیه گرفتار ما شده چیه مثلا ده هزار تومن 20 هزار تومن تو به 100 هزار تومن 500 هزار تومن چیه بایین میخواهیم زنو بسیه داره کنیم زندگی های نکبتی که ما ها پیدا کردیم لازم اینطوری شده تا حالا ما تبلیغ بریم پول نگیریم اونم پوریطوری من یه بار که ارمانشا داشتم خطبه ی فت می میخواندم یه نفر داره پول جمع میکنه خیلی بهش میدن. میدم و یه نفر داره التماس میکنه یه در تومان توش میندازن بعد یه بار گذشت فهمیدم اونی که نمیدن مال آخونده اونی که دارم میدن مال اون نهدایی که اومده شیپور دستش گرفته میخواد بکوبه بعد اون مرده گفتم برای که کی داری می مانه گفت که برای شما بیرم بی خود کردیم گفتم برای من پول جمع کنه بعد گفت اون یکی داریم برای کی داریم برای مرده به غلط کردیم بعد اینجا یک ماه کجا بوده یک ماه اینجا هستم این نبود حالا بزار پول جمع کنه یعنی چی؟ ما موندیم برای این پول حالا بی سی هزارتوم از سی هزارتوم از دارم این میاریم بعد خیال میکنیم خوبه خیلی خوبه زرنگیه لذا توحید ما نداریم توحید ما توحید نیست شهید سانی در مانیت میگه خدا یه یعنی جز احادیس قدسیه خدا زمانت کرده روزی اهل رو دیگران باید برن سر کار آخون نباید بره سر کار شغل اصلا معنا نداره برای آخون ساعت دو بریم سر کار و بعد از اون بیایم بریم یه موسسه خودمون رو بنویسیم این فردای دکترها به ما بده دردها خیلی زیاده وقتم نداریم ولی چرا اینطوری شده یا درس‌ها روزهای حضور قیاب از شروعه، روزهای حضور قیاب نیست خلبت یا با امام زمان اصلا سنخیت داره این طبعه خدا حضور قیاب باید بیاد درس. ما اولین قدم نزلستیم یعنی اولین قدم رو طلبها برای خودشون حبل نکردن میخوان اینا مفتی بشن و میخوان حادی امت باشن و از این حرفایی که مثل کاهنان آهنان آم خیلی ماید هست خیلی که چرا سوق پیدا میکنن به این چیزا چرا دنبال پول میرن چرا باید پول باشه تو تبریخ من میدستم خوب خیلی تجربه من میدستم میمودم بعضی تجار میگفتن از ما تحریف کنیم و پول هادی بدمیدیم این طوری بود سال 76 یه تاجری به من گفت که من 50 میلیون میدم شما این یک ماه از من فقط میمیادا تحریف کنم تو شید هست گفتم که نیاز ندارم 50 میلیون بگیرم چی ها کنم افیادی تو دیوونه ای دیوونه ای دی اگه بینه من که هم چی کنم یه طلبه مجرد توزی یه دون نون اینطوریه این ما طور چی دو خواهیم افتیم؟ حالا خودمون دست و پا بزنیم برای اینکه یه پولی دست ما بیان شغل طلبه شغل معنا داره یکی از لحظ های خیلی مزهک درس باید بخون آدم هرکی از دنیا فاصله بگیره دنیا میاد دنبالش طلبه ها مرموم آی من قبل از طلبه ای ازش میشنیدم و موقع میتونه صحبت کنه. بعدش خب نمیتونه زیر یک سالی هم نمیتونه صحبت کنه. بعد میفرمود که طلبه ها اگه دنبال درس بحث باشن زندگیشون خیلی بهتره داره میشه تا اینکه دنبال کار و شغل باشن برای یه عطب پاکستانی در صحبت و اینطوری باشه که پول معنا نداشته باشه ما برای پول خیلی از چیزها برای پوله ما با پول پول شده معیار یعنی با پول ما دوست میگیریم دشمن میگیریم همسایه میگیریم معیار اصلی پوله و خطبه اول نهج البلاغه و اصول کافی و خیلی از حادثه دیگه مونده بر خود ما از نشده اصلا توکلمون اون صد مرحله ای که قرءها با چند تا تهیه کردیم میتونیم که کنیم با این اخلاقی که ما داریم آخون میگه برای شب یعنی پیام میفرسن. یعنی شب یلدا شب شعالت امام مشتبه یعنی همزاد یعنی ما با عوامش فرق داریم مخالفت حالا بحث یادیم برایش بردنش قسم سوم قسم سه, قسم سه مخالفت نظامیه احکام فریگی تعبدیه احکام فریگی تعبولیه نماز روزه مخالفت التزامیه در اینها مبتله یعنی نماز رو باید برا خدا صبح رو برای خدا حج برای خدا و امثال اینها و مخالفت انتظامیه قسم چهارم مخالفت التزامیه با احکام فرعیه توسلیه توسلیه این محل نزاره این قسم چهارم محل نزاره مخالفت التزامیه با احکام شرعیه توسلیه منابراین اصول عباید و معارف اینا خارجه تفقدیات خارجه و احکام شرعیه فرعیه منجزه هم خارجه مخالفت التظامیه با احکام توسلیه فرعیه مثل دفل میت مسلم این محل بحثه که مخالفت التظامی در این موارد حرام هست یا حرام نیست بلیه بقیه یه چیزها محل نظام نیست بین فقها ها چند تا داره؟ پنج تا داره چهار تاشه قبلا نوشته بودیم یه معنای پنجومی هم دو جزبات قبل نوشتیم که مرتبط برناوی نزاد بود پنجم تا معنا برای توسلیه مطلع به تمام اقسامش در این قسم چهارم بعد از اینکه که اتفاق کلمه دارن بر حرمت در اون قسم اول و دوم و سوم در این قسم چهارم فرد مشهور حالا وجوب موافقت انتظامیه، به وجوب و غیر مشهور قائل به وجوب موافقت انتظامیه به وجوب نفسی قائل به وجوب نفسی یعنی شخصی مقیقت رو میخواد دفت کنه باید ملتزم به وجوبش هم باشه اگه ملتزم نباشه حرام انجام ولی مشهور میگه نه وجوبش قیلیه مقدمی ملتظم باشه برای انجامش بده ولی اگه انجام داد و ملتظم نبود مشکل نیست مشهور وجودش رو قیلی میدونن دیر مشهور وجودش رو نفسی میدونم و منخصو کلمات مشهور عدم و حجوب موافقت لتزامی و عدم ادراک تو به عقوب و تعلم مخالفات و ها عقلا فی نفس ها بدون اینکه سراغ انصرات به عمل خارجی بونه و تمثيل ظالم چهار صورت متصوره نسبت به دفن مگیل چهار صورت متصوره و برایه ابواس خارجن میگه عمليه ابواس و اقسام خارج یک قسمی مونه واجبه در اینجا چهار صورت متص صورت اول اینه که شخص هم ملتزم به وجوبش باشه هم دفع بکنه. قسم دوم صورت دوم اینه که ملتزم نیست دفع نم نمیکنه. قسم سوم اینه که شخص ملتزم هست دفع نمیکنه. قسم چهارم اینه که دفع میکنه ولی ملتزم نیست. چهار صورت داره. و این قسم چهارم که دفع میکنه و ملتزم نیست. محل اختلافه وید رو دفت میکنه ولی ملتظم نیست چرا دفتش کرده برن اینکه بوش مشمعیس کننده است. یا اقراض دیگه ولی ملتظم به وجودشیست در این موارد نزا دارن مشهور و غیر مشهور در اینکه حرام انجام داد یا نداده ملتظم نیست این مخالفت یعنی در این صورت چهارم محل خلاف بین فقها و یک نکته ای که در خیلی از کلمات برعکس اومده یا تصحیحش نشده یا مورد ابهام بوده اینه که تمام کلمات رو از محققین کسی تفحص کنه میفهمه که مقصود از مخالفت التزامیه اون چیزی که نوشتم نیست مخالفت التظامیه اون چیزی به ذهن میرسه نیست یا در بعضی از کلمات هم بهش شده این مراد نیست مراد از مخالفت التظامیه عدم اعتقاد قلبی نیست ما اعتقاد قلبی به این وجوب دفن میت نداریم این اصلا مد نظر نیست این بحث کلامیه یا انکار حکم واقعی معلوم به اجمال اون هم نظر نیست و مراد نیست از مخالفت القضامیه ما بیانم حکم واقعی معلوم به رو انکارش بکنه بگم نیست این هم بحثش کلامیه مخالفت القضامیه یه اصول نیست اینا ها مطبط به علم کلامه شخص میتونه منکر باشه وجوب دفن رو یا نمیتونه اون بحث کلامیه برکی به فرخ ما نداره به اصطلاح ما این بگه نمیخواد مقصود از مخالفت ایتزامی در محل کلام التظام به یک حکم ظاهری که مخالف با حکم معلوم به اجمال باشه حکم معلوم به اجمال ما یا وجوب یا حرمت آن هم بین وجوب حرمته ما به هیچ کدام ملتظم نمیشیم اصل براعت یا حلیت و امثال اینها رو جاری کنیم به یک حکم ظاهری که مخالف حکم معلوم به اجمال استلاحاً بشیگن مخالفت التظامیه نه اینکه انکار قلبی داره نسبت به این وجود یا اعتقاض قلبی به این احکام نداره این کسی در شن اعلام ما است مخالفت التظامیه استلاحه اصطلاح اصولیه یعنی التزام به یک حکم ظاهری که مخالف حکم معلوم به اجماله این محلد نزائه چرا محل نزائه؟ به خاطر این دو صورت داره یعنی دو وزیه از یک جهت التزام به این حکم ظاهری مخالفه با حکم معلوم بل اجمال و مخالفت عملیه قطعیه با حکم معلوم بل اجماله. حکم معلوم بل یکی از اون موجود حرمته نه این این شه سالسیه وجو مخالفت عملیه قطعیه با حکم معروف به اجماع لذا حرامه چرا به خاطر مخالفت عملا بر این حکم میکنه. می مخالفت عرفا بر این مقوله که شخص عهد و نگرفته به شی سال قائل شده یه سر میکنه مخالفت یا میکنه و عقلا لذا حرام یه جهت دیگه هم حرام نیست منجر به مخالفت عملیه نشده دوران هم بین وجوب و حرمت و ما که در تغلیرین یا این انجام میدیم یا انجام نمیدیم دیگه هم مدار ضدین مخالفت عملیه رخ نمیده وقتی مخالفت عملیه رخ نمیده مخالفت التزامی برای چی حرام باشه لزا محل نظاع که یا حرمت داره یا حرمت نداره مخالفت انتظامیه اگه بخواد حرام باشه طبق نظر مشهور باید مصداق مخالفت عملیه باشه و اگر مصداق مخالفت عملیه نباشه حرام نیست این نظر مشهوره نظر غیر مشهوره اینه که غیر از این که افعال جوارحی ما محکوم به تکالیفت افعال جوانه ما هم محکوم به تکالیف هم. لازم نیست حتما مخالفت التزامیه مثاق مخالفت عملیه باشه تا بگیم حرام نه خود مخالفت التزامیه به ما هو فعل من افعال جوانه میشه انسان قائل به حرمتش باشه بعضی از موارد فعل جوانه ای فعل قلبی محکوم به حرمت کشانی داره و این مشهوری که بین فقها ها متداوله که تکالیف موضوعش فعل مکلفینه نه اینطور نیست فعل مکلفین اعم از جبارهی و جبانهی لذا علا من باید بحث کنیم که مخالفت انتظامی بخواد حرام باشه آیا حتما باید مخالفت عملی باشه تا بگیم حرام یا نه خودش مستقلن میتونه حرام باشه ولو منجر به مخالفت اولیه هم نباشه دو تا مبنا درش مشهور میگن تا تحت عنوان مخالفت اولیه نباشه حرام نیست نه اینکه در خیلی از فتاوام شما دیدید ولی غیر مشهور و قبل اقواب و قدقواب جماعتون میدن معاصرین و متاخرین اینه که میگن مخالفت التزامیه مستقله بدون اینکه مستقی از مسادق مخالفت عملیه باشه میتونه حرام باشه به خاطر اینکه فعل جوانی هم بعضی از موارد محدود به تکالیف اینم یکی از مواردش حالا محل بحث ما اینه برابر این دو تا و شیخ انصاری قائل به جواز مخالفت اجباری مطلق قایل به جواز چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه بلا فرق بینهما هما اینا رو تفسیقی بحث میکنیم در صفحات جزوات سالهای قبل سخیه سی و در رابطه با بحث موافقت التزامیه کلماتی رو آوردیم که خیلی مفصلتر از بحث‌های رسائل و بحث‌های کلیدی درش است که از یک طرف مرتبط میشه به مباحث کلامی از یک طرف هم تنقیه ملاج میکنه برای قرمتی که الان اختلافی بین فقها هم 39 از اونجا زباط سابق یکی از مسائلی کنجا مطرح شده نه که حجوب موافقت التظامیه البته این بحث همیشه هم باید بعد از منسزیت علم اجمالی بیاد به خاطر اینکه یک اشکالیه یعنی خود بحث رجوع موافقت التزامیه خودش اشکاله این بحث به عنوان یک اشکالی بر چی بر جریان اصول در تمام اطراف علمش مالی. یعنی اونا که در تمام اطراف دارن اصول جاری میکنن اشکالی که برشون وارده عمدهترین ترینش همینه که اینا موافقت التزامیه رو رایت نکرد پس بحث موافقت التضامیه اشکالون علا بحث منتزیت این و جریان اصول در جمعی اطراف شبهه محسوبه. حالی اشکال های وارده یا وارد نیست یعنی وجوب موافقت التضامیه به عبارت نخراب وجوب موافقت التضامیه مانعیت داره از جریان اصول در اطراف یا مانعیت نداره اگر کسی منتظم به وجود موافقت امتظامیه باشه آیا میتونه اصول رو در همه اطراف جاری بکنه یا دیگه نمیتونه پس این بحث خودش اساسا اشکاله اشکال بر قائلین به جریان اصول در اطراف حال این اشکال مارده یا وارد نیست برای اینکه معلوم بشین اشکال وارد یا وارد نیست هنگ شیش تا مطلب باید معلوم باشه یکی اینکه وجود موافقت اتضا میگه آیا اقلیه یا شرعیه همون میگه واجبه یا میگه واجبه. بعضی ها بایدن به اینکه اقلیه بعضی ها به اینکه اقلی نیست شرعیه در صفیه سی و نو نوشتیم که قد ید دا امنال تکلیف از ساد من الشارع کما یقتزی امتصالهو فه اینم یقتزی الالتزام القلبی بهی قلت که شما باید قائلا باشیده و قد ید دا انعنوان الاطاعت و الانغیاد لشارلا جست و اغلم الا مع و افقت الالتزام. آزیام یه طور دلیل میارم که اطاعت و انقیاد نسبت به شارع مقدس فقط در مواردی که ما موانع انتظامیه داشته باشیم. موانع انتظامی نباشه، اطاعت و انقیاد معنا نداره. و اینا معلومه خرد شده. ما محل نظام در چیه؟ در توسلیات اطاعت و انقیاد در چیه؟ در تعاطیات. ز اصل که دارم میارن ادلهشون خارج از محل بحث و کلام ما در توسلیات داریم بحث میکنی. ما در دفن منیت مسلم داریم بحث میکنیم شخصی یاد میت رو دفن بکنه و مثال های دیگه شخصی امر به معروف بکنه قصدشم فی سبیل الله نباشه شخصی به یک فقیر کمک بکنه قصدشم قربت دالله نباشه یاد داریم بحث میکنیم یعنی توسطی باشه بدون انتظام داریم هر دو اطلاع رو گفتیم باطل یعنی حتما بیاریم این انتظام قلبی رو در زمین تکاریف مرزه بکنیم باطل یکی از بحثاش برمیگرده به اینکه تصدیق ما ماجا و نبی النبی پس چی میشه تصدیق میخواد دیگه انسان منتظم بشه به کل ماجا و به النبی صلی الله علیه و سلم این هم بحث کبروی داره هم بحث صغروی داره چیزی که الان هست وجوب التزام قلبی به کل ماجا و به نبی این یک بحث کبروی داره که حدود شما مشخص میکنه و یکی بحث صغروی داره که آیا منتظر بر بحث ما هست یا نیست اما بحث کبرویش ظاهرش اینه که انسان به تک تک تکالیف حالیف شرعیه باید مرتزم باشه ظاهرش اینه دیگه التزام قلبی به کل ماجا و و تصدیقش ظاهرش اینه منتها خیلی از فقهای اعلام نافی این معنی هستند. من جمله سیدی هستی قائل به اینکه نه اینطور نیست که التزام قلبی به کل به النبی هر حکم شرعی به ما رسید ما ملتزم باشیم نه اینطور نیست بلکه یک التزام و تدین اجمالی به کل شریعت چون الاسلام عقیدت و شریعت یک قسمت از اسلام عقیدت یعنی اصول و معارف الهی یه نسان باید عقد قلبی به اینها داشته باشه و تا آخر یه رسمت شریعته یعنی تشریع احکام. حالا نسبت شریعت ما دو چیز داریم یا یک چیز داریم یعنی آیا هم التزام هم تطبیق عمل در خارج یا فقط تطویق عمل در خارج بدون التزام ولو منتظر نباشیم. ولو تره بحث این معنا یه مقدار مناقشاتی درش است. به خاطر شریعت هم از توسطیات محمد ما فقط در توسطیات ولی الان که در تقدیر این سید یزدی در حاشیه رسائل قائل به این که اون چیزی که واجبه بر مکلدفین تدیون اجمالی به کل ماجعه علیه نبیه سربسته منحیص المجموع این دینه باید قبول کنه ولی حالا به هر فرقی از خروعات منتظم باشیم نه ما دلیل نداریم نه, نه اقلم و نه شرن. و مصروفا در اطرافش بحث کرده که بعضی از جوان به کلماتش رو میاریم من المجموع قایده بین که این کلیت ثابت نیست به هر فری از خروعات شریعت ما منتظم باشیم این نه این ثابت نمیشه منحیص المجموع به عبارت فمنیت آیا به جمعی احکام باید ملتزم باشیم یا به مجموعش کدومشه مشهور در کلماتشون اینه که به جمعی احکام باید ملتزم باشیم اینه به تک افراد باید از فروات فقریه امثالین ها ملتزم باشیم ولی سید یزدی قائل به اینکه نه به مجموعش نه به جمعیش جمعی انحلالیه مجموع بسیده سربسته همه اون چیزی که از طرف قیام بیاد ما بایش ملتزمیم ولیالا در تک تک فروهات و شبهات و به علم اجمالی اینا رو باشیم نه،, نه لازم است اون ما گفتیم مشهور اون قبول مشهور نه مشغور اما اتضام رو قندی بگفتیم بله همه جایی گفتیم حکم ظاهری مخالف با هر کجا باشه بسه هر کجا باشه ما میتونیم قاعده به یک حکم ظاهری مخالف با حکم معلوم و به لجمال باشیم این محضر محضر فقط تو جاری؟ هر جا نیست فقط اطلاف شمعی مجمالی اون تعریف فقط اختصاص به اون داره ازا بحث وجوب و موافقت التزامی فقط در اطلاف شمع هست بنابر نظر که ما گفتیم ولی بنابر تعریف و تفسیری که مشروع دارن در کل فقه در کل عبایده رضا اضطراب داره اینا اینطوری نیست ما به جمعیش معتقد باشیم یا به مجموعش کدومشه سیدی از دی نگیم به مجموعش قائل نه به جمعیش جمعی یعنی همه افراد تک تکیشون مد نظر باشه مجموع یعنی من و مجموع با یک عنوان بسیط قائل بشیم به این دین ولی حالا بیاییم معتقد باشیم به این وجوب به اون حرمت به اینا نه اینا التظام قلبی در اینها لازم نیست تبقیه نظر مشهور نظر مشهور حجوب موافقت التظامیه رو یک بحث سیاد در تمام فخری من ولی تبقیه اون تعریفی که ما گفتیم به موافقت التزامیه اگه هم ثابت بشه در خصوص موارد سقوط حکم ظاهری مخالف با معلوم به اجبار یعنی فقط در خصوص موارد علمشان. پس یک بحث خیلی جزئی میشه حالا ثمره برایش متعرفه میشه من نمیشه بعضی از ثمرات برایش متعرفه که مرحوم خوئیان در مصباح اصول آورده و ذکر میکنه الاکلان باید حدود و مشخص باشه شما موافقت تلکزا می و در تمام شریعت قائلید یا در تمام فقه قائلید یا در خصوص بحث علم اجمالی قائلید کدومشه؟ سه نظریه درش هست بعضی ها قائل موافقت التضامیه در کل شریعت مطلوبه کما علیه عامت المحاصلی و کلماتشون خیلی اصطراب داره و قائل شدن به اسلام عقیده است و شریعت و شریعت دو چیز میخواد یا یک چیز میخواد اینه قائلا میگی یک چیز میخواد و موافقت التزام میگه و نفتش کردن مطلق با اینکه بحث ما در بعضی از افتام شریعت که توسلیات باشه اینا رو نمیشتی این تو هم هست آن که یه مقدار تملیز ذهنی برای حاصل نشده جزم رو ببینن میدونن علا کل بله حال ما معفقت رو یک بحث عام در کل شریعت بدونیم یا در خصوص فقه بدونیم در تمام عبابش یا در خصوص بحث اطراف علم کدومش سه نظریه درشه هست یکی تا فرد انتخاب کن. نظرتون چیه معفقت ایتظامیه تفسیر مشهور یا همه شریعت رو میگیره یا تمام فقه رو میگیره ولی ترکن تفسیری که ما گفتیم که واقعاً فننی همینه خصوص بحث شباهات مغروم به این مجموعی اوه فقط اتظامی هم میخواد یا نمیخواد دقیقی دین ما کاری ندارم بحثش کلامی میشه افراد معتقد باشن به تک تک وجود هم بده بس نران هم میشه تا از بودی مجموع زاهری جاری میشه در تابقودیات میشه ولی بحث بست ببین تعبدیات رو قائلا میگه در تعبدیات موافقت التزامیه نباشی یعنی چه یعنی کسی قربت درش نباشه پس بات این میگن مشهور موافقت التزامیه نیچه یعنی نماز رو برام خدا بخونی اگه برام خدا نخونی باته اون فقط رو تفصیل کردن چی؟ فقط شما، به رژیمالیتی تعلق میشه در خصوص اطراف علم اجمالی، بله، ما گفتیم در خصوص اطراف علم اجمالی، نگفتیم فقط توسلی. در خصوص اطراف علم اجمالی حکم ظاهری محل اختلاف مشهور. ما مشکلمون دو تا یکی اینکه که استرهاب که رو چطور حلش کنیم بعد چطور این رو جمع کنیم اونها باید ما گفتیم در خصوص اطراف علم اجمالی بدون تفصیل بین تعبضیات و نوستالیات اینا معلومه تو جزو معلومه مشهور قایل به عدم وجوب عدم وجوب موافقت انتظامیه یا در کل فقه یا در کل شریعت تو جو زهر که آخوند خراسانی و طبق و علزادگی معاصرین و تخرین از خودشون نوشید اون هم بعداً بعدن ولی حالا محل نظام اختصاص داره به اطراف این مجمالی فقط حالا نظریات فرق برد مهم نیست مهم اینه که اصل تفسیر اصطلاحش معلوم باشه که ما التزامی یعنی چی؟ یعنی التزام قلبی یا اینکار قلبی جهود امثال اینها یا نه حکم ظاهری بگیم برشلافون دوتا دارونا می نیم وجو به حرمت ما حکم به وارد کردیم اینی می خوام بحث کنیم و اینو قرقی منده بحث نیست چی داشتم می مقصود از این جمله آنید داشت کنند آخر بحث برای مطالعه از این جزوها که خیلی مهمه مقصود از موافقت ایتدامی یه چیه قد خلطن اعلان بین اناوین سلاسه بین سه تا عنوان خلط شده وقی این خلط ها نمیذاره ما چیزی بتر ما وقت اومده میگرم مقصود تشکردیم چیز دیگه در میاد ما نمیدونیم چی رو داریم بحث میکنیم که باور کن بعضی از موارد ساعت ها وقت من گرفته میشه تا ببینیم این کلمات مشهور چطور میشه به یک نقطه جمع کنیم. هر کسی یه چیزی گفت. بعدم که بگن آقا اینطور گفتیم میگه نه مقرر اونطور نمیشه. یعنی اینا هم داشتن دیگه خیلی از موارد شده من پرسیدم چرا نایمین مثلا انقلاب داره گفتن نه مقدرشه بابا که از خود نایمین سوالش بیشتره. تازم یا قدر از خود ناینیه ولی خب شانس ناینی رو نداره شانس خیلی مهم گوش <تصفيق> شانس باید دست باشه از نظر فلسفی اثبات کنیم که شانس هست باید شانس ندارم خیلی یعنی ناینی چی میگفته که این تلمیز قدرش اینطوری خوب تونسته بنویسه و ان سال من سی سال هم پیش نایینه بشنم نمیفهم چی میخوادی؟ چرا قدرت داشته که این تونسته فوایدو بنویسه لذا اون قدرت را آقای نداشته در اجورت ببینید اقلاق زیاده اقلاق خیلی زیادتر از فواید قدرت خیلی دخیه در اینکه آدم بفهمه بنویسه بعضی از موارد بعضی از چیزی میگن که دیگران نمی فهمن نمی از خودشم باز یه چی برسله براش هست قد خلطت اده بین عناوین سلاسه سه تا عنوانه بین سه تا خلط شده واقعا به معنای حقیقی کلمه خلط کردن یکی تعبد به رسالت ما بحثم در تعبد به رسالت یا نه بردیان رو به این طرف کشوندن گفتن اگه میشونو که این کار رسالته و ما بحثم در این کار رسالت نیستم ما شیعه ها داریم بحث می کنیم. ما که بحث نمیکنیم. کنیم. تعبد به یک عنوانه که بعضی ها این بحث ها رو کشیدن به این طرف. دوم عقد ایمانی ایمان آوردن، ایمان داشتن، عقد تندبی، به اینها. قبل از اینکه تعبد به داریم، معتقد ایمانی هم باشیم. نم دو مقوله و سرق و موافرات اصطلاحیه یه یه اصول یه سه چیزه و بین هسته خرج شده بحثا رو یه طوری سوق دادن که یا سر از اولی در آورده یا سر از دومی در آورده با اینکه اونا محل نظامیست تعبد به رسالت محل نظامیست عقد ایمانی و قلبی اونم محل نظامیست بحث ما استلاح صرفه آیا فقیر میتونه یک حکم ظاهری بده و رعایت نکن دو دوتا روایت اومده بود دو دست روایت داریم به هیچکدام عمل نکرد یک قول سومی رو گفت میتونه بگه ما اینه داریم بحث میکنیم یعنی کاملا فنه به درد خود ما میخوره ما کاری به نه نداریم کاری به معارف نداریم لذا این سه مقوله رو آغا تحقیق اجمالی بکنید در جزوههای سابق به همین نهر از صفحه 39 از مباحث علم نشمانی به بعد ها صفات شرط افتادینا ادامه داره که این سه مقوله رو حقیقتاً باید بشیم بینشون و معلوم باشه که چه نتیجه‌ای برایش متلافت میشه از نظر اصول خودمون الحمدلله اگه اون قبلی ها کسی نداره الان میتونید این جزواره برای تکثیرش کنن اگه یه موقع گرفتنش از این جزر این مشکل داره نه ها برای تکثیر تکثیر کنید